و چون با کسانی که ایمان اند برخورد کنند میگویند ایمان آوردیم و چون با های خود خلوت کنند میگویند در حقیقت ما با شما ایم ما فقط آنان را ریشخند میکنیم